سبا وقت سحر بوی ز زلف یار می‌آورد دل شوریده ما را به بوع در کار می‌آورد من آن شکل سنوبر را ز باغ دید بر که هر گل که از غمش بش گفت مهنت بار می‌آورد فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن که رو از شرمان خورشید در دیوار می آورد زبیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم ولی میریخت خون و ره بدان هنجار می آبر. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه که از آن راه گران قاست خبردوشوار می آورد سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود اگر تصویح میفرمود اگر زونار می آبر. ف چین ابروویش اگر چه ناتتوانمم کرد بهش به هم پیامی بر سر بیمار میآور. عجب می داشتم دیشب زه حافظ جام و پیبانه ولی من ش نمیکردم که سوفی وار می آورد.